بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن منزلة بضم منازلة إياك نعبدو وإياك نستعين فكرة أندية در بيان منزلنا خستين قلتين كي انسان في شزن شزن آنکه قدم دران منزلت به در خواب غفلت هست و قدم گزاشتنش دران منزلت به این ترتیب هسته در اثر یک حادثه تمام هيك امین اسقاب غفلت بیدار می و تکان به خود می و بعد از بیدار شدن اصحاب کاری میکند چه زمینه بیدار ماندنش وجود داشته باشد و مساعد باشد تا اینکه یک سر خواب اثرش بپرد و فاصله ازش دور شود و این بیداری ملقه شود و در این صورت مستقر شده از در منزله نفستیم و آماده شده است برای که منزله های بعد فسوی ها حرکت برید وقتی که کسی از خواب بیدار شد مثلا یک نفر که از خواب محسوسی بیدار میشه یک نفر سفری رفت، جای رفته و بعد در اصنای رفتن خسته شده و به خواب رفته در یک جای دور از وطن خودش خوابش گرفته و به خواب سنگینی فرو رفته، بعد بیدار شده و به کاری کرده که بیداریش کامل بشه و به خواب دوباره بر نگرده اونطور که گاهی بعضی اصفاب بیدار میشن وقتی که این شخص به حالت بیداری کامل میرسه انوقع خود سکر میکند که کجاست اینجا چه جاییست از کجا آمده دارد به کجا میرود چرا اینجاست باید چیکار کنه، برخیزد، برخیزت برود نرود بعد از اینکه بیدار شد به اندیشه فرو می که چه هست و چه نیست و چه باید کرد و چه نباید کرد و از شواهد و قرائنی که در اطرافش هست کمک می دید. نگاه می کند این طرف و ان طرف آسمان و زمین شواهد و قرائنی می که به کمک آنها در یابد که کجا است و کوشش می کند که بیاد آورد که از کجا آمده و به کجا می خواهد درود و این ترتیب به اندیشه و فکر سرو می رود تا اینکه به نتیجه برسد و براش مشخص شود که چه هست چه نیست چه باید باشد چه نباید باشد و از کجا آمده و به کجا می رود و الان در چه موقعیتی هست در کجا که اگر این اندیشه درش ثابت و راسخ گردد زال نشود و دور نشود به منزله دوم قدم گذاشت و ملکه اندیشه هم درش ثابت شد یعنی در منزله نه تنها قدم گذاشت درش مستقر و ثابت قدم شد نمیوت فاذا استحكمت يقظته اوجبت له الفكره وهي تحديق القلب الى جهة المطلوب الى جهة المطلوب التناسا له وقت بداريش محكم و استضار شد بصورة ملفة درامت كه ديكت ترس بباسكشتن بخواب نبوت عن موقع اين بيداري موجب در اندي شفر و رفتن ميشد بدين ترتيب كه تمام نيلوية قلبش رام متوجه. آن هدف میکند که در دنبالش هست و به خاطر اون اینجا قرار گرفته که چرا هستم اینجا چرا آمده ام و به خاطر چه در این موقعیت قرار گرفته ام و متوجه می شود و در درمیابد که چرا هست و چرا اینجا آمده ام. و این توجه قلبم به این خاطر است که به دنبال او برود و در جستجویش باشد و بیابدش بعد شاهد مدابك والفكرة فكرتان عندي شايد دوغوناس فكرة تتعلق بالعلم يكيش عندي شيست مرتبط ب دانستانس وهي فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي عندي شيس كي برأسران انسان حق باطرة ازهم لها تشخيص مداد ثابت ومنفرة كامل حق باطل ازهم لها تشخيص مداد يعني این اندیشه است این اندیشه در ارتباط با هست و نیست است. چه هست و چی نیست؟ چه درست است و چه نادرست است؟ که این اندیشه منتهی می‌شود من به دریافتن اعتقادیات و مسائل دینی و جهان دینی. و فكره تتعلق بالاراده اندیشه‌ای ممکن مرتبط با اراده است یعنی در زمینه ایست اراده به عن زمینه تعلق می گیرد و هی الفکرتلتی تمیزو بین النافع و الدار اندیشه ایست که به کمکان سودمند و زن رسان را زیاناور را از هم دیگر تشخیص می دهد این یکی متعلق است به باید و نبایدها به عرضشهای اخلاقی یعنی مشخص می سازد که چه چیزی نافع است و باید به دست آورد چه چیزی باید است و باید ازش دولی کرد وبعدا ويترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع ويسلكها والطريق إلى ما يضر فيتركها يك أندي شيء دو أندي شيء ديقار برئين مترتب من شبا يكي أندي شيء در هيودان الراء به سویع نافع یعنی فکر می کند که باید برود مادامی که نافع را دیده و تشخیص داده باید به سویعش حرکت کند که به دستش بیارد و اندیشه در ارتباط با اون دار که مادامی که شناخته که این گزند هست زرر هست باید در فکری این باشد که از پیمودن راهی که بدن منتهی شود دوری جوید و از هم پس اول هست و نیست ها را حق و باطل و ثابت و منفی را تشخیص میدهد از هم میشناسد بعد آنچه که سودمند است و انچه که زرراوره است اینها را میشناسد بعد در فکری این میافتاد که به سوی اینی که حرکت کند و از رفتن به سوی آنی که که سحادهه سته تو اقسام لا سابع لها ای مجار و افکار عقلان که این شش قسمت که هفتمین را دارند و منخصر به همین هستند جبلنگاه اندیشهای عقلانند خدمتندانا یعنی هر مندی که به میافتد در این محدوده ای که از اینا دارد فکر میکنه یا اینکه حقی را از باطلی تشخیص دهد یا اینکه نافعی را از تشکیل تشخیص دهد و یا اینکه در صدد در اندیشه حرکت کردن برای تحصیل نافعی و حرکت کردن برای اجتناب از زرعاولی باشد چیزی دیگه غیر اینها نیست که انسان در مادام کسی که من باشد در زمینش فکر ک تبادني بياد دو اصلها في التوحيد اساس طايي ان فكرها ان انديشها ان الشيء انسان بيدر ميشوال از ساوه حفلت و شروع ميکنه به نیروی بسر اول به کار میوفتد و مطالعه آیات آفاق آف و آف که نیروی بسر به این نتیجه می‌رسد که سنن و قوانین حاکم است بر این موجوداتی که مشهود است و مورد مشاهده قرار می‌گیرند متوجه می‌شود که هیچ چیزی از آن چیزهایی که مشاهده می‌کند بدون برنامه خاصی و بدون قانون و مقرراتی نیست و همینطور ترهاب بدون نظم و ترتیب صورت نگرفت. هر چیزی تابع یک سنتی و یک برنامه یا یک نقشه تا اینجا بسر کار میکنه بعد نوبت قلب میرسد که میاد از این دستاور رای بسر استفاده برای علم ماورای بسر ما وراء محدودی که به صدر نشکار میکنه یعنی یکی یکی این نظم ها این سنتو قانهر میتواند دلیل قرار دهد برای شناختن آنچه که مرتبط با این ها از, از صفات خدا و از اسماء خدا چه میراث بین که, می که خداوند علیم است حکیم است قدیر است با اراده است درای اسم از، درای بسر، درای کلام از، شیا، شیا، شیا. همیتورد با تأمل در این دسته ورداه بسر میرسد به شناخت اسم و صفات خداوند و شناخت عالم غیب آنچه که در ارتباط با این آیات هست و آنچه که شناختنش برای کسی یک بینش، یک بینش کامل لازم است. و بدین ترتیب با بکار گرفتن قوه بسر و قوه قلبش میرسد به یک مجموعه از جهانبینی از بینشها و از اعتقادیه که در این مجموعه از بینشها برایش روشن شده است که خداوند خالق آمر است و انسان و جهان هستی مخلوق معمول خداوند خالق است که برای هر چیزی اندازه گرفتنی طبق اندازه ماده جدا کردنی صورت خاص بخشیدنی برابر گردانیدن اون مخلوق با تلحی که در علمش مقرر بوده و بخشیدن مقدار معینی از استعداد و نیرو اینها را رعایت کرده و هر موجودی را با انجام دادن اینها به وجود آورده که این می شود رابطه خالقیت و و بعد یعنی از یک طرف خداوند خالق است که انها را انجام داده از یک طرف انسان و جهان هستی مخلوق است که انها رویشان انجام گرفته بعد رابطه امر متوجه این نیشه که خداوند آمر است و جهان هستی و انسان جهان آفرینش انسان مخلوق معمور و انهم به دو گونه امر امر تشریعی و امر ابتلاع امر تسخیری بیشتا امر تسخیری این که خداوند بعد از تکمیل خلقه هر موجود در یک جهت اون را قرار داده و موجود دارد بدون چون چرا در اون مسیر حرکت میکنه و در اون اتجاه پیش میدود و بعد در مورد موجودات با اراده علاوه برانچه که از جهت غیر اختیاریشان امرهای تسخیلی در یافت از جهت اختیاریشان تشریعاتی برایشان فرستاده. که بهشان می که از این راه بروید و از این راه مردی و به این ترتیب متوجه می شود که خداوند خالق آمر است و اندرشم تصویری هست و اطلاعی و انسان و جهان هستی مخلوق و معمورند و این رابطه برخارر است درمیان خداوند و درمیان جهان آفری انسان بعد رابطه انسان و جهان آفرینش این طور روشن می شود که نظر به اینکه انسان دارای نیروی علم هست جهان آفرینش یک کتاب مطالعه است برایش و نظر به اینکه دارای اراده هست جهان آفرینش یک مجموعه از امکانات و از منافع و از نعم هست که در اختیارش خرار دارد با اینکه از اونها استفاده کن اینطور رابطه هاشم با جهان هستی مشخص میشه که به این ترتیب ارکان بینش و جهان بینش حال یک به جای خود مورد توجه قرار میگیره خداوند جهان آفرینش انسان و حیاتشم تشکیل میشه از این بینشو بعد جهتگیری هایی که بر اساس این بینش داره خب وقتی که بیدار شد و به اندیشه فرو رفت و در اطراف نگریس میبینیم این گونه رسید به بینشو این گونه حق را از باطل جدا کرد و این گونه ثابت را از منفی تشخیص داد. بعد از اینکه بینش یافت، جهان بینی به دست آورد، آنگاه وقت حرکت کردن است. چون تا اینجا دانسته که چه هست و چی نیست. حالا موقع این است که موضع بگیرد و چکار کنه و چیکار نکنه. کافی نیست. برای چکار چیکار کنه و چیکار نکنه، باید چیکار کند یعنی برای اینکه دریابت که چه باید انجام بده و چه باید انجام نده بعد قوه سمع را کار دیرد در تلقیه هدایت از خداوند و در گوش دادن به هدایت خداوند که در اینجا برایش مشخص میشه که چه باید میکنه و چه باید نکنه. اینم تشخیص نافع از دار و به این ترتیب راه زندگی برایش مشخص میشه این راه از راه های دیگه مشخص میشه راهی که عبادت از مجموعی از بینش ها و مجموعی از ازش های اخلاقی از سائر راه ها میشه بعد ایمان اینکه به فکر حرکت در این راه اجتناب از حرکت در اون راه های دیگه باشه که اون بدون بارو اون و بدین ترتیب میبینیم که کار توحید شد اگر در میدان توحید موفق بشه موحد بشدر در علوهيته عن طريق در ربوبيته در خالقية دار موحد هاس كارا يدي بيشتر اسميش سينس كمي بياد الفكرة في التوحيد وهي عندي شه در زمين التوحيد استحطار أدلته هذا البيض عندهم دلائد الضراهن توحيد در قلبه والنظر إلى شواهد الدلالة على بطلعون الشرك واستحالته تقد بنگرد بسوئے ان دلائل و شواهدی مبین ان حسن که شرک باطل است و محال است که غیر خدا الہ دیگری وجود داشتا باشد مگر الہ فرمان رضائی نیست که رحمان و رحیم و مالک باشد مگر قریاد رسی نیست که رحمان و رحیم باشد خب کیس که غیر جس خدا وجود دارد که رحمان و رحیم و مالک باشد کسی که بتواند جلب منافع کند بتواند دفع مزار کنند، بتواند کنترول کنند، الان و آینده موجودات را غیر خداوند کسی دیگری نیست که این کارار در دست داشته باشد پس طبیعی است که غیر خداوند فریاد رسی نباشد فریاد رس بدون اینکه رحمان و رحیم باشد فریاد رس حقیقی نیست باطل است و نمی شود فرمان روا باشد در حالی که رحمان و رحیم نیست و مالک نیست تهیه امکانات نمی کند رفع موانع نمی کند و سرانجام و سرنوشت انسان در استش نست و به وقتی که دقت می کند در جهان هستی متوجه محال بودن شرک می کرد از هرچی که می بیند از مظاهر رحمت خداست هرچی می بیند در تحت سیطرا و کنترل خداوند هیچی نمی مند برای کسی دیگر رحمان دیگری نیست رحیم دیگری نیست مالك و ملك دي غري نيس فس محالسك إله دي غري معبود و مستعاني هم باشا والنظر إلى شواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته محالبودا وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين محالسك دو نفر إله باشا كربوا بيه من شوانك رب فقط يكي أرسل نمي شودتها باشا رحمن ورحيم مالك. غیر خدا نہیں پس معبود ما المستعان ہم غیر خدا نہیں و كذلك من افعل الباطل عبادۃ اثنين و استعانۃ اثنين ہم تو کہ الوهیت برائے دو تا ثابت نہیں موزع گیری هم دیگه نمی‌شه در برابر یکی بیش از یکی موزع گیری عبادت چه در برابر الہ مشه باطل است کہ عبادت دو تا صورت گیری عبادت دو تا باطل است استعانۃ دو تا باطل است چون فقط یکی معبود است فإنما هو إله واحد لا إله إلا هو وهذه الفكرة حقيقة الولاء والبراء إن أندي شيء أندي شيء توحيد حقيقة أندي ولا أبراء برقرار كردني رابطة ولايته نزديكي بخدا و تبريو بيزاري جستنو برقرار كردني إن رابطة بمعصبه اینکه ولی خدا باشد که خداوندم ولی او هست و عدوه هم که باشد از خدا بریده که او هم عدوه اینست البراء من عبادت غیر الله والولاء لله ولاء اینست که انسان با کسی یا چیزی رابطه ای عنشنان داشته باشد که حائل و مانعی در بین نباشد رابطهی که با او بس لشکنه دوله ارتباط ده خب انسان وقتی که نگاه می کند جالب منافع دافع مزار کنترل کننده الان و آینده انسان و آمر متاع و مستعان تنها خداست دیگه چه و همین طور خالق تنها خداست دیگه کانال دیگری دي برای ارتباط دیست همین کانال ها برای کسی مخلوق کسی باشه، با مرتبط میشه ازش منافع بگیره، از دفع منذرش استفاده کنه، در تحت کنترلش باشه، اطاعتش بکنه، ازش کمت بخواد، از یکی از این کانال‌هاست که میشه با یکی اعتبار برقرار خب این کانال‌ها جز به خدا و کسی دیگه رابطهش نمیده، دیگه با یکی اعتبار برقرار کنه. کرا ولی فقط قرار بده. جایی این کانالی نیست که اورا به کسی دیگه کنه. دیگه جز خدا ولی دین خداهم ہم وقتی کہ این ولی او شد این ولی این پس کہ این رابطه ولایت ہم دو طرفی ہے جو از طرف او ایمان و تقوا دارد از طرف خداوند مجدے خوشبختی دنیا و آخرت را به او می‌دهد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا و کامل التقوی لهم البشره في حیات الدنيا وفي الاخره کہ ہر کہ حتن با ملتقیان باشه ولی خدا با خدا هم ولی اوست او ایمان و تقوا به خدمت خداون میبرد و هم گشتای متعلق به دنیا و افاترابون در حد سرعت خب چون کس دیگری هیچ از اوصاف را ولا با کسی دیگری نداره البته سایر مؤمنین کسان دیگری هم که با خدا از این کانالها ارتباط برقرار کردن چون با خدا مرتبط هستن خود بخود با اونا مرتبط میشه با اونا یک ولاء برقرار میکنه ولی این ولاء فرع ولاء با خداست چیزی جدازم نیست به این خاطر گفتیم دیگر ولی دیگری غیر خدا برای خودش قرار نمیده و این ولاء ناشی از ولاء او با خدا هست و به این ترتیب هر مؤمنی با مؤمنهای دیگه را به ولا دارك والمؤمنون بعضهم أولياء بعض راهمن تور با بندگان خدا في ملائكه ميگويند نحن اولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هر كه با خدا ولا داره كساني كه با خدا مراداران باهن مرتبت ميشن از طريق و باهن ولا, با ولا ولي با كسايي كه با خدا رابطه ولا ندارن رابطه ولا ندارن حالا اونایی که رابطه ولاء با خدا ندارند دو قسم میشن یکی کافرین یکی هم که تای کنه مؤمنان کافر یعنی مشرک های فطری که هنوز تبلیغ به اونها نشده اونهایی که مشک فطریه موضعی گرفته نمیشه در مقابل در برابرشان بلکه براشون حق کبیر میشه ببینیم چه موضعی میگیرن اگر ولاء با خداست ولی ولی ایشان میشیم اگر ولاء با خدا نیست موقع مثل اون گروه کافرین دیگه کافر میشن و رابطه با کافرین رابطه عدا میشه دشمنی رابطه براء می شد و بیزاری هم طور که پیغمبر خدا ابراهیم به قومش می فرماید که ما از شما بری هستیم و به شما کفر می ورزیم کفر و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنو علام عداوت علام دشمنی با ان با خدا دشمنت و از خدا بریده و دشمنانه بریده بعد ازش برید دشمنانه و قلبی که درش عدابت دشمنان خدا نباشد باید شک کرده در این که ولاء خدا درش قرار میگیده قلبی که بغض دشمن خدا درش نباشد چگونه میتواند که جایگاه حب خدا باشد و یاد آور شمید که کسیفترین دشمنان خدا حکامید حكام بغير ما انزل الله و عن طبقه ديگر كسام جه خدر الشفاء و بستاء بين مردم و خدا قرار مدهم انهم رؤوس اعداء الله همراه إبليس وباية شديدترين بإذارية و تنفر عداوة مؤمن نسبت به ان حكام باش بعد چند اصطلاح ديگر هم ذكر ميكونات كي اصطلاحا اهل تصوف هستم فاقا انسان در انجا انار نبينا متاهیر میشه که مراز زینا چیه؟ نکنه که چیزای عجیب و غریبی باشه که اونها باونا دستی افتند و ما دست نیو آبی می‌دونیم یه اس حاصلش نه. اینجا توضیح میده که همه در حول حاشیه توحید هستند. همونجور که ولای ابراء رفتن احتاز. ولی نحی و اثبات را بیان میکنند. و هیا ان حقیقت توحید فکری توحید حقیقت النحی و الاثبات. یعنی چه؟ فيمحو محبه ماص والله من قلبه علما وقصدا وعباده كما هي منقوطه من الوجود دوست داشتن غير خداره را از ما محو می‌گرداند هم علما اصلا محبت غير خداره را چیز نمی‌کند به صورت یک معلوم در قلباش جای نمی‌داند این تصوورش نمی‌کند كمان من یک از روزا غير خداره را دوست داشته و بعد قصد و آهنگ این را نمیکند و بعدم بر اساس این موزعگیری نمیکند کسی را دوست داشت در حدی که خدا را دوست داره چیز میکند عبودیت میکند این تصور نمیکند که غیر خدا را دوست داشته باشه و قصد دوست داشتنش خود به خود دیگه نمیکند و بعدم موضعش موضع عبودیت نمیشه که مبنی بر دوست داشتن این دوست داشتن را از قلبش محو میکند همچنان که در واقعیت خارج از قلب او محو هست و وجود نداره جای نداره اصلا محبت غیر خدا اینجا بعضی‌ها ادعاشن که محبت غیر خدا نفی محبت مؤمنین نمیکنه چون مؤمن را به این خاطر دوست داره که او با خدا و خدا را دوست داره و محبت مؤمن فرع محبت خداست ازو جدا نیست پس وقتی که ما معصیت شامل مؤمنین نشه و یثبت في ويثبت فيه إلهية الله وحده إنهم إثبات محبة غير خدارة القلبش بلني كنبو ألوهية خدارة دلقل بش إثبات وما الدوم الصلاحة دي هذا الصلاحة دي جاد. جمع الفرق وهي حقيقة الجمع والفرق فمن جمع فرقا الفرق فنوردش استعمال فرق فرقش فيفرق بين الإله الحق وبين من الدعية له الإلهية بالباطل اینا را هم جداً من تشخیص می‌دهم. الوه حق را از کسانی که به ناحق برای اونها الوهیت ادعا شده. حالا چه خود اونها هم راضی بوده باشند مند خوب کام اون کسانی که ادعای واسطه گری میکنن. چه بنده دار صالح خدا که خود لازمی نبودن ولی بعدن براشون ادعا کردن مانند پیغمبران سایر صالحین که ما اینها را الوهیت قرار دادن در حالی که ایشان راضی نیستند که فرق میاندازه تشخیص میده الوهیت حق خدا و الوهیت ابدعای را که برای غیر خدا اثبات کردن در نتیجه عبد غیر خدا نمیشه و تنها عبد خدا میشه وان هم تشخیص این تشخیص هم از طریق همان نظر در آیات عفاق اون که غیر خدا رحمان نیست و رحیم نیست و مالک نیست و ملک نیست پس چگونه میشه معبود و معین باشه؟ ويجمع يعني يجمع ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على اله الحق الذي لا اله الا الله هر شيء كدار در ارتباط با اولهيهت تمر جن يكون در ارتباط با خدا قرار ميدهت تنها خدا را اله قرار ميدهت به معنا که تنها او را عبادت میکند تنها او را دوست تنها از او تنها بأو أميد دارت تنها برو متوكلاست و تنها أزوكمت مخال كي تنها أو إلهي حقش هستو غير أو إلهي ديگريمست أنشي در ارتباط با إلهي قرار دادمشي دا همارا قرد ميادر ودر ارتباط بأو خدا قرار داد و دو اصطلاح ديگر تجريد و تفريد وهي حقيقة التجريد والتفريد همين حقيقة توحيد حقيقة تجريد و تفريد يعني اندو اصطلاحا در الزمينة بكار برده مشه يعني ايش تجريد فيتجرد عن عبادتي ما سواه خدره لخت ميقرده اندو اللخت مشهد از بندقية غير خدا التبعيس ديه في اين قالت درمنا و يفرده وحده بالعبادة و تنها خداره منحصر بفرد معبوده خد قرار ميده انم تفريد خدره از عبادة غير خداه لخط مجرد كردن و خدا معبود منحصر تفرده مستعان منحصر بفرده قرار داد. فتجريد نفس و تفرید اثبات. تجرد نفی است غير خدا از اینکه معبود باشد و مستعان باشد و تفریدم اثبات معبود بودن ومستعان مستعان بودن است. همانطور یعنی تجرید لا اله استو تفريغ الى الله نفي لا اله السوء اثبات الى الله نحو لا اله السوء اثبات الى الله وبراء براء لا اله السوء ولا الى الله فرق لا اله السوء جمع الى الله والمجموع مجموعه التوحيد همينه كبان جمشه توحيد رتشفيني دا التوحيد نفي غير السوء اثبات الوبيته فهذا الولاء والبراء والمح والاثبات والجمع والفرق والتجريد والتفريد هو النافع المثمر المنجي الذي تنال به السعاده والفلاح اناس إنا كسود من دست السمر بخشو نجات دهن لي انسان كسعاده وفلاح از انت لقباب تحت البخشو دن به درست انسان میرسد و کسب میشه یعنی وقتی که در اندیشهش به اینجا رسید دیگه متوجه نافع و دار رم میشه چون حق و باطل را از هم تشخیص داده و بر اساس آن چه باید بکند و چه باید نکند مشخص میشه که آنچه باید بکند عبودیت خداست و آنچه که نباید بکند عبودیت غیر است و بعد از آن دیگه میماند اینکه چیز کنند در اندیشه این باشد که در این مسیر حرکت کنند اتجاهش اتجاه عبودیت مخلصانه خداون باشد با توکل بر رو استعانت و از جهتهای دیگر از جهت دیگر های دیگر اجتناب باشد و چون این حالت به صورت ثابت الراسخ درج تحقق التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها مياه التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع بها و التي تتمتع بها المساعده التي تتمتع درش به صورت ملکه در بیاد با شخصیتش آمیخته بشه جزء شخصیتش بشه کارش دیگه درسته بقیه همه میشه تفاسیر و شروح این مطلب و به تعبیر دیگه اگر بگوین انسانی که سوره فاتحه را درک کنه و حق این سوره را مجملا ادا کنه، یعنی حمد را که کچید ربوبية را بشنا تفتجي تفاصيل ان را رحمان و رفين و مالك و معبود و را وبعد در مقابل شناقتن ان اسماع و صفات و رغبت و رغبت و عبادت و استعانت كثي كي انها براش واضح روشا بشو در ان محدودة اجمالي اداية وزيفة كنت وانش كي در انجاب دست ميارا براش ملك شوات مجملن تمام ملکات خیر را کسب کرده است بعد میمانت تفاصل و شروحی که برین متن و برین مجمل میاد که کار آسان میشه بعد ازام یونیت که ثلاثة منزلة بصيرتا فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة در همون نصال شخص أسخاب برخاصه وقت أسخاب برخاصه خوب بيدار شده بعد بعد فرو رفت و موقعيت خود را درد کرد بعد الآن استمرارش بر این اندوش و فكر میره ساندش به اینکه دیگه همه مسائل متعلق به مسائلی که بهش متعلق هست در ارتباط است واتو باعثش اینه براش خیلی روشن و بعض حمجن و جلوگرم میشه دارای بسیارت میشه یعنی تنها تنها حالتی که مشغول اندیشیدن و فکر کردن اصلا میمانه نتیجه براش واضح نیشه مشخص نیشه براش و اهل بصیرت و بینایی میشه و دیگه ابهام و اشکالی در کار باقی نمیمانه که نیاز داشته باشه به با اینکه بر ذهنش فشار وارد بیاره و بیشتر بیاندیشه و چیزی نمانده که خود را زحمت بده در اقتصابش و در کشمشه بصيرتشي هي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما اعد الله في كل الأصحابه وما يقع قبل ذلك من في الصوري وغيره بعد انتضاء الدنيا السريعة الزوال فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما قد دعت إليه الرسل والتضرره بمخالفته بصيرت نوريس که بعد از استوار گشتن عن فکر و انیشه در قلب انسان جای می گیره نوری که خداوند در قلب انسان می که با نور وعد و وعید را می بیند یعنی اینکه خداوند وعده می نهد که جنتی و نعمی و ردوانی و فلان و فلانی هست و وعید می‌آورد که تحلیب می کند عذاب از دو، سخت است و چیست و چیست اینا دیگه براش واضح هم که داره می بینه چیزایی دور از قلبش نیستند اینا را با قلبش لمس میکنه خیلی واضح و روشن هستند براش جنت و نار را داره می بینه با بسیرتش اینا را داره احساس میکنه. چیزای غریبی نیستند از نظرش پنهان نیستند آنچه که در جنته و نار آماده گردانیده شده برای اهل این و اهل آن اینها را می‌بینه عذاب جلوه چشمش است ثواب جلوه چشمش است و من آنچه که قبل از آن رخ می‌ده شیپور بخواب که همه نمی‌میرند شیپور بیدارباش که همه برمی‌خیزند شیپور بستاف که همه حاضر می‌شوند در دادگاه برای محاسبه و محاکمه و بعد از آن محاکمه و محاسبه و بعد روانه شدن به جنت و بنار همه اینها دیگه برایش روشن است جلو و جلوه چشمش است و چیزای غریبی نیست چیزای نیست که از یادش بره و تذکر اینها و آوردن اینها زحمتی بهش بده بلکه مثل اینکه داره می‌بینه و این را خوب لمس نیکند که این دنیا خیلی زود میرود و میگزرد فائیدار نیست و باقی نیست می روید تا آن حوادث و وقائل اندنبالش بیان و چون این بصیرت را پیدا کرد انچه که پیانبران خدا گفت اندرین زمینه متوجه این می شود که رعایت اونها براش سودمند است و مخالفت اونها براش زرع را برس چون انسان عوامری که رسانده در ارتباط با اون نعمت هاست نواهی که تبلیغ کردن در ارتباط با اون عذاب هاست که اگر اطاعت کند با اون منافع میرسد اگر مخالفت کند با اون مزار میرسد در نتیجه چون منافع و مزار حقیقی جنت و نار و آنچه که متعلق به آن هاست جلب چشمش است و چون این اوامر و نواهی تبلیغ شده در ارتباط با اونها دیگه منتفع میشه به اطاعت و میدانه که اگر اطاعت نکنه و مخالفت کنه متضرر میشه و گزند بهش میرسه در نتیجه مخالفت نمی کند که گرفتار اون ضررها نشود و اطاعت میکند که اون منافع را بدسته ابن الويل والبصيرة على ثلاث درجات من استكملها فقد استكمل البصيرة كبصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الأمل والنهي وبصيرة في الوعد والوعيد بصيرة دارية سيد درجة كذلك هل سيد درجة تحقق من بحشد هنا تحقق من بحشد چيگه بصیرتش کامل است و در این منزلت قرار گرفته و آمادگی انتقال به منزله بعدی را دارد که این درجه عبارتند این قسم بصیر عبارتند از اینکه بصیرت در اسماء و صفات اسماء و صفات خداوند را قد شناسد و به حد بصیرت و لمسه در بصیرت قلب فرساد معانی اسماء و صفات خداوند را مشخص خاطر شود و بعد بصیرت در امر و یعنی اینکه شریعت خوب براش شناخته شده باشد و اشکال ابهامی در فهم و در شریعت نداشته باشد کسی چه باید کنه و چه باید نکنه اینها براش روشن باشد بعد هم بسگرید در لوعد و رأیت که ابهام و اشکالی در مورد جنت و نار و عذاب و ثواب و اینها در کارش وجود نداشته باشد که اگر در این امور که مجموعه می شوند بینش و ارزش ها اگر در زمینه این بینش ها و این ارزش های اخلاقی بصیرت حاصل کرده این اصول هستن اصول بینش ها و ارزش های اخلاقی و بلکه جامع همه بینش ها و ارزش های اخلاقی هستن بصیرتش کامل شده است چیز دیگری نمانده است که نیاز به دانستنش باشد و بعد رسیدن به بصیرت درم اسماع اصفاق همه چیز را دربرمی گیرم وقتی که خدا را با اسماء اش بشناسیم با اسماء الحسنا دیگه خالقیت و ربوبیت و الوهیت خدا را شناب. رابطه خداوند با جهان هستی و با انسان را شناب. رابطه انسان با جهان هستی و جهان هستی با انسان را شناخت و این ترتیب آن چه که متعلق به بینش هست بر آشکار شد بعد امر نهنم که رایی باید با با با با با و نباید هاود چکر باید بکند ازش های اخلاقی این هرم کاملا شناهد واعد و هم که از یک جهت خود در دا دا دا دا دا بین ها قرار دارند از جهت دیگریم هم به این خاطر جداگان مطرح رحمی که گفته می شود کسی که دارای آن بینش و آن جهان بینی باشد و ملتزم بدان مجموع ازش عز های اخلاقی باشد در ارتباط با وعد خدا قرار دارد کسی که برخلاف آن باشد در ارتباط با وعد خدا قرار دارد که بصیرت در این وعد و وعدم از این جهت لازم است که انسان با این وعد و وعد است که در زمینه تکمیل بصیرت در اسماع و صفات و در امر و نهی قرار می و چنانچه چنانچه در این زمینه سستی و تساهلی رخ دهد به اونجا می و بصیرتش در اسماء و صفات و در امرو نهی ضربه برش وارد می شود و کامل تفاقم و بعد از این شروع می به ذکر مقامات و ملکه هایی که با حصول آنها با استقرار در آنها تثبیت است حاضرند. او حده مناظر شاعرین و با شارحش ابن خلیل صاحب مدارس اینطور شون کرد که از میانه این یہ جاننا ضروری ہے کہ سنہاری چار طرح عوامل بنیادی ہیں کہ حقوق ہے ہر انرجی جریطی شق میں ہر ملک اور مقام کی استقرار در ہر مقام کی جگہ استقرار در ان چار مقامات اقامت در ان چار منزلات سرت ہے استقرار در این چهار مکان سود گرفت این چهار ملکه خصوصیار یک کار اه رسیدن به سایر مناظر و گذرستان های مناظر خاصی این چهار اداره اندر یخوا ایدال ذکر اندیشه بصیرت بینایی و عزم. در مورد منظلت نخستین بیداری کنی میگوید بیداری عبارت است از این دهشتی که قلب انسان را فرام دیرد اندامی که از خواب غفلت داری کنید توزه چیمه که ما میدانید انسان صاحب نفسی که این نفس عبارت است از روح به اضافه یک مجموعه از استعداد ها که برای این آخری داشته که مجموعه از برشت كنان طاب بسورة هذا الدربيات استعداد بصر بسورة الملكية الدربيات متالعية آيات آفاق وأنقص خسلة مسابقة رشب استعداد قلب بسورة ما عالم الشحابت. ما آفاق و... بسورة ملك الدربيات و خصلة الصابت استعراض الصمت بعض بسورة خصلة ملك الدربيات في إنسان حلقيه و دلية تنه في داية قدار ان شلون كناس که ان شلون تلقي كناس که هر عملي زي که ا ايدان خورده تلقي يعني تلقي ان ان رو سالو ملاكات و داداد اراده يعني تقسيم جلسن بر انجام تصمیم ده ها و اجتناب از ناتصمیم ده ها هم خصالت پای ثابت شدند مجموعه تصمیم ها به گونه ای که انسان متوازن انسان آفریده شده که تعداد خاص به این گونه رشد کنه و برای اینکه این استعدادها بتوانند رشد کنند این جهان آفرینش هم به به مجموعه امکانات بر اختیار قرار داده اما از آنجایی که این امکانات جلوه‌هایی دارند که ظرفاتی دارند که انسان جایی مغلوب درخشندگی اون زرف و می شود و به جای که حقیقت اون امکانات و نهمتها را لدی آبد و ارتباط درسته که با اونها را حبز کند مغلوب می شود و به دستاوردن و برخوردار شدن از خود امکانات مقصود و مطلوبش می شود و از یادش می روید که این برای تذکیه نفس رو و به این تردیب به خواب رفت کرومی مثلا یک عده در یک گوشه ای از زمین گفته می شود که کلان فرمندوا به در شهر کلانی یک روز را رای بار عام مقرر کرده و اعلان شده است که هر کسی میتواند برود و به حضورش برسد و باریابد در اون روز مقاطع پس شما هم به راه راه میفتید و بره مردم راه میفتند و زمنان اعلام هم میشود که در طول مسیر در مسافتهای معین امکاناتی از خوردن و آشانیدن و ساید چیزها وجود دارد که نیتوانید بسید ها استفاده کنید برای اینکه تجرید قبار کنید و راه دارید عملدید مردم راه می و هنگا که به اون نقطه اول می رسم انجاید که انفاناتی هستو استراحاتی می کنند که استراحت میکنند در ضمن تجدید قبادی و restoration توسعه ای برای یک قسمت دیگر از مصافت نگاه میکنند که در کنار اون نقطه معین در کنار اون مثلا چلو قبادی یا کاروانسرا یا هر چیزی دیگه ای که بنامیم طاری آراسته راست ساختمان و قرطی وهای بناگون که از همون میوه ها و از همون سمرات برای ایشان چیزی آماده شده به اندازه که نیازمند باشند که استفاده کنند و برابند اما ادهی از مردم جذابیت اون میوه ها و اون سمرات جذبشا می کند و می رووند توی و هر قد تا پیش می رووند میوه های می پرزرق و برقه می, می بینند و میروند تا اینجا در جربه باق قرار میگیرند و مشغول نظر کردن به نووهای مختلف و سرگرم استفاده کردن از اون نووها میشوند و لذت اون برخوردانی به می میرسد که از یادشان میروند درای چی آمدند و توقفشان در این نقطه قرار بود داشت که باشد و نیمانند. نیمانند و می می چه گونه باشه و میمانند میمانند این کاذب می قران چه کسنین بیاستندانی خواوند اوقات بعد از زمانی طولانی که دیدار نمی شدن که وقت گذشته تمام شد تازه اگرم با جدیته فراوان راه بروند نمی رسن تمام شد گروهی دیگر در منطقه دیگر و گروهی دیگر در منطقه دیگر و به همین ترتیب هر قنطیه تیش می روند سالتین کمتر می و تنها ادنی راه راه ادامه می دهند که هرگاه به نقطه می‌رسند، رسند متوجه هستند توقف فقط به فاطر تجدید خواه و این امکانات و نعمدها برای تجدید خواه در افتادشان قرار دارد پس در این حد از اونها برپردار می و از اون بیشتر نه و بعد راه خدا ادامه می دهند تا ده حضور فرماندهان و تکمیلا صندوقه ناظران تکلیف حالا از جمله اسامی که در یک نقطه از مفاهیم توقف به واقعی تنار رفتاندو در در اصل فلو رصداندو مشغول استفاده از آن آی و بند از این امات‌ها بعضیشان یک دفعه آوازی به گوششان نیسد کسانی که بعد از توقف و تجدید قوار راه افتادند و نحیب میزنند که راه روان که برید یک دفعه بعضی از اونها یکی یا چند نفر از اونهایی که کنند فارق را قد بر اثرش همیزان اینسان به خود می آیند و یک لرده از اضطراب وجود شاندار ران الهلال هم ترکیه یک نفر در حال خواب هست و چه دیگری با وارد سردن در به سر می‌گیردون از خواب بیدارش می‌کنه که در حالت اضطراب قرار می‌گیره با اون حالت از غفلت می‌پرد و متوجه می‌شوه که چه خطایی کرده اولا نمی‌تونید اینکه که از خوابی جنگه وقت گذاشتید اینجا اولین قدم دیداری نهاده شده اولین قسمت عجبیداری تحقیب یاده اون تکان خوردن اون به لرزیدن بر اثر شدت اون صوت که بوش رکید حالا اگر به خود توجه کند و نگذارد که این حالت از بین برود. و را از اون صوتی که بیدارش کردن منصرف نکند کم کم کم بیداری قوت میگیرد تا این که کاملا اثار خاص از پرش و در نتیجه با حصول بیداری کامل از اون بایداری بیرون میجهد و میرود و فرار میکند میدود تا این جبه سائر راحتوان میرود غفلت از مسئولیت هم به همین گنات کسی که درمیان یک مجموعی از امکانات آفریده شده برای تذکیه نفت و مجموعی از استعدادهاد که سرار از سورت ملکه هایی در بیاید و غفلت دوچار شده و از یادش رفته که چیست این امکانات که در اختیار دارد چیست این اینند مثل همون کسی که خواب رفته و یا مثل همون مسافری که در الله از یادش رفت داره به کدامیک؟ مدلشی که دعای او آغاز می‌دهد، از خواب رفت دیارش می‌کنه، تکان می‌خورد، رعشیدار بودی داشت آرزش وقتی این می‌شود مبادی دیاری. تا به این امر توجه جسد شنا بقدرت شد را بنا و است گوش کم کم کم همان اختبار بیاد که اینکه این دیداری نسبت به مسئولیت این توجه به اینکه اون چیست و در کجا اون مفاهیه تشکیل و ضایع چیکار این نسبت یک حالت دائمی درش ثابت و راسخ می‌گردد و به نسبت در میاد که بعد از دیگه رفتن برش حاكم نميشوت اذا دال لحظات أزيادش في حسب برش حاكم شبد مثل انت في لحظات خيلصريع يكفأت ازيادش من رتباني كم لحظه طول مشى شود با يادش يعني مثلا لحظات اسمي نازيكش أزيادش ولكن بيادش ميادو متذكر که یک حالت عادل و عارضی بوده ارزش ندارد و گفته می شود که این شخص ملکه ال مبن امر را دارد در رو این نمی خذند به نیتا که وقتی که به صورت ملکه درآمد دیگر از این بعد اگر در این درجات های بالاست دیگر غفلت خاطر نمی اگر در درجات های پایین هم باشد افغان اینو که خداوندو داشته مطمئن اینجا شاید گاه گاهی ذات بشری دانش خاطرش انشالله و غفلت برش اش عارف شمد اما دوام ند ندارد و به زودی باز یک وقت این قدرت قدرت خدا می میرد و صحنه ها تحت تغییر تنت قرار می ده این اولین منظوری که انسان درش قرار می که می این یقزب به این, این ترتیب رخ میدهد و صورت میدهد که انسان یک رفعا متوجه نعمتهای صرابانی که خداون در اختیارش قرار داده امکاناتی که در اختیارش قرار داده بشود و متوجه شود که نعمتهایی که خداون در اختیارش قرار داده از حد خسر بیرون هست و همزمان با انهم متوجه موقعیت و وضع خود شد با وجود این که خداوند این همه نعمت و امکانات را در اخیارش قرار دارد و در بیموالاتی و عدم احساس مشغولیت دارد به سر می دارد و حق ناشناسی می کنید در اینجا توجه به نعم غیر قابله عد و خداوند به موجب نیشود که محبت خداوند در دلش جای گیرد و خداوند خداوند را یاد کند و در برابرش حضور به خود حالت حضور به خود بیرد این همه امتحاب و این کانات را در افتیارش برابرد و توجه به تقصیلی که خود دارد در شکر ها و دارش میکنه به اینجه ای متوجه حقیقت نفس خود شود که چگونه دوچار حقارت و کستی شده و متوجه گناهان خود شود که شکر نعمت خدا را پشت پا بهزده و احمالش کرده و حق خود را در اون کرده و در نتیزه با خیار گرفن محبت خدا در سن و با شناختن خود و توجه به حقارتی که به نفسش برای نفسش روح داده بران می آید که آسین همت بالا داده کمر همت بسته و در خلافی آنچه که از دستابه و در کانیر آنچه که خراب کرد و در جبران آنچه که از دستابه بکشه و تمام انسانات و نوخای خود را بکار کرد یعنی این یقوه انگیزاننده اون می شود و دافعش می شود به توی ادان مجموعه حالا چبونه این امر صورت بگیرد یعنی تمره همت در جبران ما فات آثار اون گناهان را از روی روانش بزداید و چگونه خود را از نتایج و عواقم و خیم اون گناهان برخاند میگوید با چهار یکی توبه یعنی پشیمان شدن از وضعی که داشته دست برداشتن از انته که مرتکبش بوده و از بران که بر اینکه که بار دیگری انهم را مرتکب نشد این و بعد از آن دوم اینه که توبه بود دوم استغفار وقتی که توبه می کند دیگه از این بعد گناهی نید اما آثار گناهان پیشین هنوز بر روی روانش هست که این یکی ارتباط و ارتفاع دارد ارتفاع می کند از خداوندش مذکرت می خواهد. یعنی می که خداوند برایش یک حفاظی یک سپری بسازد که از تأثیر آثار اون گناه محفوظش بدارد و اون آثار را از روی روانش بزداید دودهایی که روان به خود گرفته از روانش بزداید این دو و سبون انجام کلدارهای نیک که خداون می فرمزد این مرحسن آفید و انجام اون کارهای نید آثار اون سنیدات از روی می امرون هم در قیل استفاد هست به قمت و چهارون موضع در هنگام گرفتار شدن به مصیبت ها وقتی که گرفتار میشه به مصیبتی میتابی نکند صبر کند و راضی شود به آنچه که خداوند مقدر و مقرر کرده موضعی که موضوع مؤمنانات در این زمینه داشته باشد که اینجا هم اجر بزرگی براش ثابت می که این هم با در زدودن آثار گناهان و در جبران مافار معتر و بدین ترسید تبین با توبه و اختفار و انجام قدارهای نیک و صبر در انگام نزول بلاها خود را عظمت و نهانی که داشته از سرایم و سرودی که داشته قابل بیان نیست تحقق یافتن کامل توجه به نعمه داد گفتیم که توجه نعمه غیر قابل عدو عصر خداوند عدو حسب خداوند نشود چگونه این امر به صورت کامل تحقق یاده میگوید این هم به سه سبب و با کمک سه امر تحقق میگه یکی این که اقلش را قلبش را بکار گیرد و متوجهه نعمت های غیر ظاهر بشود تنها نظرش به نعمت های ظاهر نباشد مثلا متوجه عظمت هدایت و نعمت نجات از گمراهی و مسائل از این قبیل بشود متوجه عظمت نعمت توفیق برای سیر در راه عبودیت بشود و بدین ترتیب بسیاری از نعمت های را که مشهود نیستند احاطه کردن تو شبکه باخانات خان اعتماد کنند به این نعمت هایی که مشهود هستند تکثیری نعمت های را که سریع است یکی دیگر از امور این است که از دیدن نعمت های دریغ نورده و نظرش بران نعمت ها باست و رحمت خدا را در همه آن چیز در اطافش و در بانای سرش و زیر قات تاشخست ببیند مورد نظر داسته باست که این هم غیر قابل قد و اخیرا سوگه اینکه این که از مشاهده احضال اهل مسائب و بلایا هند بگیرد وقتی که یک نفر مبتلا به بلای را میبیند اینجا تعملی بکنند و فرض بکنند چه خورش گرفتار اون بلامی بود چه خالتی دار. و بعد اکنون چه گرفتار اون بلامی است چه نعمت بزرگی دارد مثلا در مورد نعمت های مادی یکی را می که کور است کر است یا لنگ است یا نقص دیگری دارد اگر خود را به جای او بگذارد و, و فرض کند که اگر کور می بود امکان معالجه وجود می داشت یعنی سؤال از خود کند که اگر او این حالت را می داشت چه می آیا اگر همه سروت های جهان از آن اونی بود و تنها راه به دست آمدن سلامت و تندرسی دخشی از دست دادن و نعمت ها بود؟ آیا نمی داد؟ حاضر نبود که همه سروت های دنیا را بدهد بشت اینکه سشمالی به دست بیاورد یا مثلا گوشای به دست بیاورد یا چجایی می وقتی که دقت می کند که هر ازوی ازازایی که دارد یک دنیا نعمده و بعد نعمدهای بزرگتر بسید که گمراهان را میگیند آن موقع متوجه شد که خداوان چه خدا نعمدی به اولاده نعمدی هدایت را که اگر مثل ها بود چه نیکن و به دین ترتید متوجه کسرت و عظمت نعمد خداوان میشه و اما این که چگونه به حقارتی که نفسش دوچار سده به صورت مطوب پی ببرد و چگونه حقیقت نفس را چگونه در مقام سرزنس و لوم و تخقیر نفس که مرتقب این تقصیف ها شده در بیاد این هم باز نیمه بسیار یکی در نظر داشتن عظمت کسی که حق عبودیت برگردنش دارد وقتی که عظامت خداوند متعال را در نظر می آورد ان نوعه متوجه می شود که چه نفس حقیقی دارد که در مقابل این خداوند عظیم این گونه بی مبالات موضع گرفت دو اتناختن حقیقت نفس خود مگر نه این او یک مجسمه از نیاز و افتقار به خداوند خود است مگر نه او یک لحظه بدون رحمت خداوند است نمی تواند باشد پس چگونه است که با این همه نیاز افتقاری که به خداوند دارد این گونه بیمبالاستانه در براورش مازالی دیرد و نسبت به مسئولیتی که به و خدایش گذاشته از این گونه این مبالعاتی را وقت می کند و اینجا هم باز متوجه می شود که به چه تصدیق دوچار شده و اخیران تصدیق و عید یعنی ایمان به اینکه که روز محاسبه و مجازات خواهد رسید و در حضور خداوندش احضار خواهد شد و مورد سوال قرار خواهد کرد و تونان چه امروز در داد خود نرسد و جبران ما فاق نکند و خود برای خود محکمه اقامه نکند و خود را دران محاسبه ده ده ده ده ده ده ده و محاسم نکند دران روز جواب نخواهد داشت و از نتائج بمبالاکی ها و عدم احساس مسئولیت هاش رحایی نخواهد داشت بعد می گوید یکی از بالا ترین درجات بیداری این هست که انسان متوجه پیشرفت و عدن پیشرفت خود در ارتباط با گذشته زمان باشد یعنی هر روز که میگذارد خود را مورد بررسی قرار دارد ببیند آیا پیشرفتی کرده و یا در همون جایی که بوده منده و قدمی پیشتر نمیدار آیا این مدیشتری بلیت دارده صاحب دار اتدام و تعفید دیشتری پیش و به دونه ای کرده یا نکرد که اگر همراه زمان دارد تیش می که خوب اگر اگر از زمان جای منده زمان پیش می روید و اون در جا می خوبد پس بداند که در وسطیقی خطرناکی است و اگر خود را در نیابد به حلاک خواهد و در اینجا می دونید برای این که این امر تحقیقی آبد به صورت کامل کاملا متوجه شود که آیا در تیش رب حسیانی باید سه امر مورد نظر باشد و حقاق خیال یکی این که هر روز از دانش کتاب و سنت چیز جدیدی بیندوزد و به دست آورد اگر متوجه هست که پیوسته در مسیر هر چه بیشتر علم کتاب و سنت هست که علم عبودیت هست و علم تذکیه نفس اگر اینگونه هست که خوب وگرنه اگر این طور نیست و وقتی که خود را مورد بررسی قرار می‌دهد، می‌بیند می بیند که دیروز چگونه بوده است امروزم همون طور است و پارسال چگونه بوده است امروزم همون طور است پس وای بخالش که اگر هرچی زودتر خود را در میابد کارش سمام شده است. این یک دو از انجایی که کس دانش های جدید حدود جدیدی از مسئولیت را برایش آشکار می سازد متوجه شود که آیا این حدود جدید را هم رعایت می کند آیا هر حدی از حدود مسئولیت که مطرح می ظاهر می مورد رعایتش قرار میزید یا آیا حرمت حدود خداوند را رعایت میکند یا اگر رعایت میکند اگر همچنان که علمش در حال فزونی آفتنن تا خودش رعایت حدود مسئولیتش هم در حال فزونی آفتنن که خوب و الا باز بدانت چپ رید حلاف دارد و اخیرا صحبت صالحین یعنی همراه بندگان شایسته خدا باشد و ایشان را یار و میزن قرار بهد صالحینی که در حالت پیش رفتند خود را با ایشان مقایفه کند دبیند آیا همراه ایشان یا به دنبال ایشان در حرکت هست یا نه اگر هر قدر که ایشان پیش می روند باز این هم با ایشان هست که خوب به این معنی که در عین اینکه که این در پیش رابط هستند هر قدر که با وجود اینکه زمان خیلی می گذارد باز می بیند که شایستگی بودن با ایشان را دارد در بینش به ایشان نزدیک. کرد در التزام بهشان نزدیک است در خصال و خصوصیات نفس بهشان نزدیک است که معلوم است این هم ترقی کرده ولی اگر نه بیند که با گذشت زمان احساس وجود فاصله در بین خود رو ایشان میبیند میبیند که ایشان در حالات دیگری هستند او در حالات دیگری به گونه ای که تحمل نمی کند که همراهشان باشد. وقتی که همراه صالحین هست متوجه می شود که ایشان در غرق اهتمام به مسائلی هستند که این مسائل در نظرش احتمام اهمیتی ندارند متوجه می شود که ایشان اجازه سیطره رفلت بر خود ندارند مثلا در صخنگلتنهای عادی و بدون فائده وارد نمی شوند مرتفب انجان و کارهای بدون فائده نمی شوند فوقات خود را به طالب نمی گزرانند هر روز در اداه مسئولیت جدیدی هستند و هر روز در حالتی اتخالات هستند که او تحمل پذیرش انها را ندارد و نمیتواند در این جوی که ایشان ویجاد کرده اندباند. اگر متوجه می شود سی انگونه هست پر باید متوجه باشد که دارد بشنی حلاق می و تنها در صورتی معلوم می شود که دارت پیش رفت می کند که هر قدر ایشان پیش می روند با احساس ودود فاصله اینی به این که این هم همراه ایشان یا در پس ایشان دارت روانه می شود و هر جهت پیش نمی آد که احساس بیگانهی نسبه اونها به اشترس یا تحمل زیستن با ایشان و بودن میان ایشان را دارست اگر و اون حالته مفروض بسید که معلومت همزمان با زمان دارد پیش می روید و در حال پیش رفت و قدر دارد و اخیران می گوید همه این اموری که گفتی دو یک خلع العادات این که انسان بتواند عادتهایش را بدور دینداد بتواند که خود را از سیستره و تسلط عادت هاش برهاند و این معنی که اگر تا در خابیدن در خوردن در پوشیدن در سخنگفتن در کار کردن و در هر شعنی از شعون زندگی یک راه و رسم خاصی داشت. یک برنامه خاصی داشته بتواند اینها را همه به هم قبلا همیشه قرار بوده روی توشی بخوابد لحظی هم اثر بکشد مثلا و در ساعت معین بخوابد در ساعت معین بیدار شود بتواند که بدون توش بدون لحظ و بدون رعایت وقت معین بخوابد بدون رعایت وقت معین بخوابد چون مسئولیت اینها را ایقضاء دارد یعنی قبلا مثلا همیشه هست ساعت قابل وقتی که متوجه است که مسئولیت اجازه به این اجازه نمیده که این طور واسط بتونه مثلا بهش ساعت تقلیل داشته یا بانی کم تلایی و اگر همیشه اعتیاد داشته که عادت داشته که غذاهای معینی بخورد یا در وعده‌های معینی غذا بخورد اگر مسئولیت اقدا می و حتما هم اخضا می کند به که آن عادتها را ترک کند به غذایی غیر آنچه که بهش عادت داشته اختفاق کند و به کمتر از غذاهایی که خبلا تناول کرده اختفاق کند و به همین ترتیب در سایر شؤون زندگی اگر طواند عادتها را سیطره و تسلط عادتها را از خود دور کند که نتواند آنچه که قبل گفت شد انجام دهد وگرنه اگر مستخر آداب بود اگر آنطور بود که نتواند از سایهلی آداب بیرون بیاد که دیگه امید به انجام چیزی از آن مسئولیت ها و امید به تحقق بخشیدن به امری از آن امور این یکی گفت که ملاک همه این امور بدی کرده که خلق خلاء و دیگر الغربة بين أهل الغفلة والإعراب إن كه هنگامي كه در جمعي قرار نغيرت كه غافلند و معرضه از یاد خدا و از برنامه خدا احساس غربتكم انس نغيرت في كساني كه غافلند و معرضه از یاد خدا انس نغيرت و الفت نغيرت اگر انساني در ميان جمعي قرار گرفت كه اون جمع غافلند معرض از یاد خدا و احساس غربت نکرد ایشان را هم دم و هم راز خود دانست و خود را بدیشان نزدیک دانست پس بدانم که از ایشان است خودشان غافل است و تنها در صورتی میتواند ان اموری که قبلا گفته شد انها را تحفظ بخشد که وقتی که در میان چون جمعی قرار میگیرد احساس غربت کند گویی که در یک دیار غریبی واقع اگر اگرچه همراه برادران، هدر، مادر، خواهر و همین طور فائر خیش باش اگر باشد اگرچه در منزل خودش و همراه زن و بچه خودش باشد وقتی که دید ایشان غاصلند احساس وربط کنند و احساس انسه با ایشان و الفت با ایشان دست نده و طبعا مرادی نسته در دایره روحش و در روانش احساس غربت کنند و نتواند که با دیگر هم باشد و نه با جسمش با جسمش باید درمیان مردم باشد در سخنه حاضر باشد و همیشه مجهول بیدار کردن غافلان اتفاق غفرت باشد و اما با روحش از اشان باشد یعنی نه بینش عن بینش هست که ایشان دارن نه اقیده آن هست که ایشان دارن نه الفزام و تأهد ان هست که ایشان دارن نه خصال و ملکات آن هست که ایشان دارن ونه جهکیری و رفتار و روش عن هس آن هست که ایشان دارن اون چه که متعلق به روان است در این زمینه او اون با ایشان اختلاف دارد، ولی در ظاهر روان جسد در نیاغی رواند خاضر که ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون الله افضل من اجل ان يكون هناك افضل احساسش اجل ان يكون هناك افضل من اجل ظاهرش در هناك افضل در اجل اهل يكون هناك افضل من اجل کرده يكون در حال تلسیه نفس بودن و در آره حال غیر سلوت یه گفتن چون اینا ضعیفن و تأسور پذیر نمی شود با ظاهر و جسمشون هم حاضر باشند در میان مردم پس برایشن تجویز تجویز فضال و خلوت میکردند و امر به خلوت میکردند تا اینکه مراحل راتحی کند و قوت بیابد و انگاه ادازه بودن با مردم یشان میاده ولی این امر در شریعت اساسی ندارد و نمیشه وقت انسان در یک تنظیم و در یک حرکت و یک دعوت تجذیذش کنند. اما یک چیزی شبیه این مترو باست و بلکه واجب است و بعد رعایت شود. و آن اینکه کسی که هنوز بسطه استعداد و آمادگی برای دعوت نرسیده کسی که هنوز داعی نشده حضورش درمیان مردم حضور داعیانه نباشد مسائل دینی را مطرح نکند خود باشد در میان مردم ولی همیشه به فکر این باشد که تأثیرات سوء بر روانش ننشیند احساس غربت را در روان داشته باشد از لحاظ جسدم با مردم باشد اما متصدیه اموری که اهلیت و شاید به انهاره ندارد نشارد هنوز نمیتواند دعوت بالحکمه کند موازه خسنه کند جداله باللتیه احسن کند اقامه حجت کند مشغول این کاره نشارد اینه را بگزرد برای کسانی دیگر ها این که مراحل را تیمی کند وقتی که مراحل را تیمی کند انگاه به عنوان یک داعهم اجازه حضور دارد پس همیشه با جسد حاضر هد همیشه ب جدای از اهل غفت باشد و اما به عنوان یک داعی تنها در زمانی حاضر می شود که حوانائی و اهلیت این امر را یافتند همطور که مثلا یک نفر دانش آموز با جسمش همراه مردم بیستواد هست در روحش جدای از ایشان و مشغول اندیشه در باره درسهاش اما به یک معلم و یک دبیر حضوری ندارد تا زمانی که به مدرک مورد نظرش برسد. و ام موقع که حضور به یک معلم یا عبدیر را درمیان بیست بابا و درمیان نیت الگلاد دید